نگاه نویسنده فهیمه رجبی کارگردان محمد جواد بوستانی دیگران به ترتیب اجرای نقش مریم یلدا فاطمه سبا شریف شرافتی فحیمه رجبی نصرت فاطمه شریفیخا نادر محمد دواد بوستانی سعید محبی عوالی امویحیا محمد جواد دوستانی دایی نادر حسن زنفغاری زنمون الهام جلالی نگاه فاطمه محمدی نیستانی افکتور فهیمه رجبی تحیه شده توسط گروه نمایش نوینایان صداهای من. تا کسی نیومده به سراغ کتاب کتابا و برگه ها به صاحب خونه هستی. اه؟ حالا چه وقت اومدم بود کجا بذارم بهشون حالا؟ کجا؟ ها ها زیر بالش سلام بله بفرمایید خوش اومدی. سلام وای خسته شدم تموم راه و دویده ببخشید فاطمه جون مزاحمتون بهتون شده ما و... نه مهمون رحمت خداست بفرمایید ببین فاطمه جون من دلم نمیاد ببینم اینطوری برای دختر قصه میخوری شما مثل خواهر خودم اینم قسمت دختر من بوده که نابی نابشه از قصه این دختر دارم میمیرم تازه بسم درسم خود بخونه اگه مردم بفهمندر نابینا میشه آبرون میره باباش با درست خوندنش مخالفه منم گفتم هم که خوندن نوشتن یاد گرفتی که نمزارم ادامه بده به همه گفتم میره کلاس خیاتی خب شوهرش بده بره حرف مردم هم دیگه نمیشنوی آخه کی اینو با این شرایطش میگیره برای پسرش راستش باتمه جون مگه پسری رو میشناسم. مادرش میخوادی دختر مطی یا بی زبون بهش بده دختر تو هم که اینطوری زبونش شانس شانستون گفته فردا میارمش ببینینش آخه خودش هم میدونه کی زیر باره اینطور دختر رو میره. باشه. به وابست میگه فرد بعد از زور بیگه. خدا برات خوب بخواد خواهر اله خیر ببینی شرافتی اون مشکلی داره انگاه چشمه نمبینه عقلت هم داده یه جارا شد داره؟ حالا دلش برای دختر حرف زیادی هم نزه راست میگه دختر. حرفی دن تو بفهم هم که تو رو بر خدا رو خانم من راضیم هر وقت شما بگید ما هم برای مراسم آماده ایم به مادر مجبور بود تو که می دانید روستای ما حرف هف, هف مردا بابا ترسید کسی تو نگیره داد به نه تا. همه شو همی توریه یه موش آدم بد اخلاق گنده دما فقط طاقت بیا این بچت که اومد و حتما اوزاد بهتهم باید من دیزهش ندارم من احساسی بهش ندارم م نمیخوام نمیخوام نمیخوام اینطور کنه نه این حرفو نزن تو باید به خونش بری. به هیچی نگو تو که نمیخوای منو بابات از نیش کنایه های مردم دق کنیم ها باشه با مامان باشه عقب هر شما بگید اما اما این هستن نیست چه دخت دیدی، را دیده تو زن پونزه هستنگی که بکنه حتی حتی براش لباس سفیده از هم نیارن تو رو خدا به این آن هم نگاه کن از گرد و که مردم نیزن کجا ات کجا ات کجا آینه هماله مادر بزرگش بود. نمیدونم گفتن رسمشونه یا خودش وصیت کرده که برای همه نوه ها از این آینه استفاده بشه. مهریتم هر گفتن بابات نذاشت. قوی که قبول نکنیم اینم میره. من جلو مردم خجالت میکشم. چیکار کنم؟ ولی بدون تقصیر منی. مریم خانم، شما میخواد بیاد توی اتاق خاتمه جون اجازه سلام سلام آقا آن ترسیدی؟ آخه دختر توشیده بنامینا که نازو ترس نداره ب اما من همش پول. ده سلامه. توی یه روستای ما دختر بزرگتر از نو پشت بموننده حساب میشه. تو هم که چشرت هم مشکل داره یه بدتر میتونی بشینی. وقتی میگم تو این همه ابداری فقط باید بگی درسته و بالاتر از چشم نگی باشه. پس رو حرف من حرف نزن ولی نه پاشو بعد از من بشین. هیچ وقت تو زندگی دیگه نه بعد از من حرف میزنی نمیشینی. تا وقتی من وای سودم تو هم حق نشستن نداری تا وقتی هم من حرف میزنم خفه میشی مردی گفتن زنی گفتن بابام خدا بیامرز میگفت زن هیچ چی نیست ولی مرد خدا یعقله اما بابایتون ماله قدیما بوده الان دیگه از این حرفا نیست بابای من قدیمیه آه! وای دختری دیوونه چی کار کردی؟ چرا جیغ میزنی؟ اون زد تو صورتم من چیزی به نگفتم بعد خودش افتاد رو زمین نظرت خانم تو رو خدا اون چشه مگه بهت نگفتن اون سر داره وای تا برم قرصاشو بیارم تو هم برو لباساتو تحوض کن تا اون حالش خوب بشه کسی به من چیزی نگفته من چیزی نمیدونه هستم وای وای وای دختری بیچاره حیب نداره تو هم برو عوض کن اون اگه به هوش بیاد دیگه چیزی یادش نیست اینجا چه خبره؟ چی شده؟ آه. فاطمه راستشو بگو شما نمیدونستی نادر سر داره؟ سر؟ نه دیدی مرد؟ دیدی با دستای خودت دخترتو بدبخت کردی؟ بده بده این خوشبختیه بیا ببیندگی نیازه نیست منو از کسی همه کنی همینو مقاستی فکر خوشبخت شده لا بد بخشیده نمی پدر نمی بخشه آ شده تو رو خدا بهش غلط کردم نه نمی خوام گله کنم که سرنوشت من بده غی تو بازی چرا کسی نغوت بده باز نمیخوام گله کنم باز گله های میخودی بازم بگم برای چی شب روزیم نبودی سه ماه بعد هی ضعیفه گوش کن امشب شب فامیله من شام میان اینجا ما که برای عرصی بهشون شام ندادیم زود باش باید غذارم خودت بفزی حدودا چهل نفر شب اینجا که جا نمیشیم وقت میگم امشب یعنی خفه شو یالا بیا حالا چه خاکی جوز ترم بیتر باشم برم مادر رو بیارم که نمیتونم که این همه قضان رو روش کنم کجا میری میرم مادرم رو بیارم من که از بس این هم همه کار بر نمیام برو بری بایی به حال درگه دیر بیای قضام رو کجا گذاشتی تو اجاق. بان چ میکنی دختر؟ از دست این نادر مادر خستم کرده اون از قُر زدن هاش،, هاش. اینم از اینکه یه روز نشده شده جمع کرده دوتی بده. اومدم دنبالت بیای کمکم کنی، خسته شدم، خسته از دست این مرد. نه، ناشکری نکن. تو تازه عروسی، چه چ میکنی؟ می‌کنی؟ عروس تا یه مو از خونه بیاد بیرون. بدو. ودوتو کس تورنه‌ای وای مردم مردم ما در خسته شدم بلم کنین همش مردم مردم هر کسی سرش به زندگی خودش گرمه خانم خوش اومدیم بفرمایید سلام نادر خوب مادر چی چیشو صدای چی بود مریم مریم چی چیز مادر؟ من کنم. عبا عبا عبا مادر. میکنم. خوش مادر. مادر. خوش مادر. نه نه نمیخواد کمک کنی خودم جمعیش میکنم گذاشته اینجا مثل همیشه خوب شد اومد این وگرنه این به دست و پا برام نمیذاش دست دسترم وردار نادر ولم کن ببینین همینطوره به جای اینکه حرفهای منو تایید کنه بی تربیت میره بیرون نادر ای قصد سرزنشش نکن مثلا شما تازه عروس دومادی من سرزنشش نمیکنم. کنم با خدا یه مرز می مرد باید به زنش مرتب اشتباهاتش رو گوش زد کنه تا از نره زن هیچ حالیش نیست و اگه مردش کنارش نباشه زندگیش رو هواست نه ای حرف و مگه من مادرت نیستیم داریم با آبردار زندگی میکنی. شما دیگه بیور شدین فرق چجوری زندگی کنی. شما فکر اون طرف باشی. این چه حرفیه؟ خدا به آدم زندگی بخشیده تا آخرین لحظه لذتشو ببره. نه تا یکی از دو طرف مرد، بیشن عذا بگیره تا او یکیم بمیره. این مریمم به خودتون رفته. من به مامانم گفتم بابای من و شوهر شما از دست زناشون مردن. یا حالا بس با توکی ندارم. مریم، قل سامو بیار تا از دستم پرزن دوباره حالم بد نشده. قدر بابتون رو دونن. او پیش ای جواهر بود هنوزم یادم از طرز بابا شب از درد کمر بند حتی دور اکسر ناله بزنی مادر چرا مرد اینقدر بدن نه این حرفو نزن همه که بد نیسته این سنت ما که زنه له کرد ببین ما با هم تیر از مراسومات این تاپ دیدم یه روز رفتم خونه زن همسایه بهش پارچه بدم برام لباس بدوزت. دخترش داشت کتاب می‌خوند. گفت اسم نویسنده‌ش خانومه کتاب ازش گرفتم به صورت اون قچش بوندمش. دختر ادروش برام سوخت. گفت میخوای برات کتاب بخونم؟ بهش چیزی نگفتم از ترس این مرد نادره. اونم فرام نمیذارم طرسم جلوش آبرون رو ببره مادر اما دلم میخواد بیاد اینجا یه وقتایی برام کتاب بخونه چه ادمای این روستا اینجوریان چرا درس خوندن برای دختر ایبه چطور به 15 سالگی نرسیده شما میدن و مثل من میگن ترشیدیس اگه 15 سالشون بشه نه مادر نمیخواد راش بدی تو خونه اون یه دختر جوونه هم جوون یه موقع میاد شوهرتان که از خدا خواسته زندگیت به هم میخوره ولش ولشکا حالا اونا که ای همه کتاب خوندم به کجا رسیدم وای مادرتا نمیدونی که چقدر دلم میخواد یه نویسندشم درم میخواد داستان رو بنویسم تا همه بدونن تا همه بفهمن که دیگه زن مثل گذشته ها نیست باید بهش به داده بشه حق مایی نیست توی چهار دیواری حبس بشیم هر روز به باد فهش و کتن گرفته بشیم های ضعیفه ماردی از این قرصی الهی خفشی اومدم تو سرم گیج مخوره مای وای خاک برسره، مگه من خبر مرگ چقدر کار میکنم که اینجوری زندگی خود می‌کنی؟ چی شد؟ نکنه ضعیف شدی؟ نه، ببینمه تو بارداری دختر وای، نه بایده، نه خدای من خدایتا قدم بده پاشو پاشو هیچ کاری مهمونات بیاد چیزی کم باشه نادر روزگارتو سیاه میکنه باید یه کاری بکنی دیگه کتکت نزنه فردا بهش بگو بارداری امشب نگیا من رفتم تا به بشورم. تو هم بیا مرگ پاک کن و خورشت آماده کو بدو. بدو آفری. جوکار میکنین جنت کجاست؟ اما اون کشش چرا درسته نداره می بیاد یه خراب کاری بکنه آبرون بره من یک نداره بدم کاری تکت دیگه پس فیلم نیست کار میکنه زشت میچین تا خودش بیاد نه حالا چراا دفعه بعد بهش میگم چ آدا جون میزن منو میبینی؟ اولش اومد توی خونه من تا اومد ناز کنه دو هه زدمش نشت سر جا. تو هم باید می تو بکوبی تا همیشه راحت باشی و سه دفعه حالشو بگیر دیگه موتیت میشه این رسم و رسوماتونه که از زنتون یه حیبون ساختی که تو کتک نخوره حرف گوش نمیده الان توی شهر زنا ها پا پای مرداشون دارن کار میکنن اول از همه این شوهراشون که بهشون کمک میکنن ساکت باش تو هنوز بچه ای چی از زندگی میفهمی ببین بچه دا یاغی میشه جدا پدر مادرش وای میشه ببین بچه این سنت ماست که با مرد مثل مسیع اعباب تو خونه رفتار بشه نادرجی تو قبولش نکن تازه اون زن چشاش نمیبینه باید خدا هم شوک کنه که بعد از زاده من دلش برایش سوخته نداشته تو خونه بابا از این شوک های مردم بمیده اینو میگم و میرم اولا نادر چهار سال از من کوچیک پس اونم بچه است سانیان توی شهری روزی یه نفر ماشینش آورده و من تعمیر کنم برننده گفتم به زنش بگی پیاده بشه چون باید پشت فرمون میشستم و درستش نبود کنار زنش بشینم. اون مرد به هم گفت که زنش فلجه و نمیتونه بیاد پایین. حالا از نظره اون ایرادی نداره که اگه اینجا بود معلولیت زنشو جار میزد و از همه میخواست دلشون براش بسوزه. ولی اون مرد با متانت کامل بهم گفتش که مشکلی نداره رفتم نشستم پشت فرمون یه چیزی که خیلی تکون داد این بود که اون زن علاوه بر اینکه تو بغلش یه بچه بود شوهرش سرش رو از پنجره ماشین کرده و تو روی زن و بچه‌ش پات اومد تا من در باز کرده بودم داشتم درستش میکردم شوهر دوید چند آب میوه و شکلات خرید داد به زنش به من تعارف کرد اون عاشق زنش بود وقتی کارم تموم شد از مرد پرسیدم یک یه میپرسم فقط صادقانه جوابم بده ازش پرسیدم تو واقعا دوستش داری یا دلت براش میسوزه اونم گفت صادقانه اینه که من به خاطر جسمش انتخابش نکردم به خاطر روح و وجودش بود که عاشقش شدم اون درسته که از نعمت پا محرومه ولی با آمدنش تو زندگی وجود من کامل کرد همه چیز جسم نیست ما فقط از جسم و عنوان یه ابزار برای زندگی استفاده میکنیم. همه اخلاق و رفتارها به واسطه روح آدماست نه جسمشون در واقع این تماسهای روحی نه جسمی با روح مناشق میشیم، به هم عشق میورزیم، یا از دست هم ناراحت میشیم. بهش قول دادم که در کنارش احساس خوشبختی کنم. حالا بابا، آقا یحیا، یه مقدار به انسان بودنتون فکر کنید. نه اینکه خودتون رو در دست سنت ها اسیر کنید. سعید، تو نمیتونی نظرات تو به ما تحمیل کنی. دیگه نبینم این حرفا رو بزنی و زنارو پررو کنی. اگه این مزخرفاتو بشنوند دیگه به حرفامون گوش نمیدن. حالا کجا میری سعید؟ سعید صداع بزن منو که بار آخر بذار ببینم قرار آخر برای بار آخرم شده شده فقط بخام چش مویه قشننگ توش که تو برام بیا به جرم عاشقی با کشمنون در رو نگاهکن تننه نهی فزار رو خسر در رو تو رو به جون خ رو خوبمون بمون. تو رو به جون خاطرات تلخمون نرو بیا براحتم کن از نگاه آدم نظر بگیر دامنم را آدم ها. بگو چرا باید به سوز لحظه های من به خاطر نگاه اشتباه آدم ها. برای آخرین نفس به خون ترانه ای که باید از و بگذرم به هر بهانه ای که میشه از رد شد و نظر به جاده کرد که میشه این رو از دلم پیاده کرد این آخرین قدم مریم خانو شرافتی یادته. آره همون که کلاه بردار یادمه مگه میشه سرانشش کنم چند روز پیش پسرش داشته با دوستاش آتیش بازی میکرده بعد چوبای آتیش گرفته رو داشتن به همدیگه پرت میکردن یکی از اون چوبای آتیش گرفته خورده تو چشش دکتر گفتن تا آخر عمر احتمالا نابینا میشه تو نباید نفرینش کنی ازم خواسته که از تو حلالیت بگیرم ازم خواسته که بهت بگم ببخشیش حدش بوده وای نه خدا خدایی ببخشتم خدایی ببخشتم بچه ی تفرم ازوم چی کنه مریم نهونا منتظرم زرفا رو تا غذا رو بگیشه زود باش. موازه باش نری زیا. اصلا تو برو بشین. من نصرت خواهیم قضا رو مکیشم. آره نه نه. تو نمیخواد کاری بکنیم. بتر میزنی همه چی رو خراب میکنی. برو بشه مهمون ها. اولا نادر نه آقا نادر زنداییم گفته برای مهمونی با دو نو به پخته بشه خجالت کشیدم نه تو رو خدا بخونه الکی نه الان صدامون میره بیرون مهمونم ایش نود تو رو خدا نادر زشته من که از رئیس ما روش نمیدونستم خب خب این دفعه نو درست میکنم ندارو خورو نکن نکن نمیت نمیت حالا آدمت میبونم بزر دهنت رو ببندم تو بیشتر از این آبرومو نبری آهان حالا شد فاطمه خانم نادر کجاست نیست شنگار رفت طرف آشپس کنه نمیتونم. یعنی چی شده بس خونه بسته است بودو نکن این وقت بزندش ما الان برمیگردی نادر مریه در باز کنی چی شده شکار <تصفح> کردی نادر مگه تو دیوونه شدی این به جای دستت درد نکنته <تصفح> برگه من مادر داره بمیره چی شده ببین نسر ببی ببین پسر وحشت با یه دونه دخترم کار کردی دست خودت چی شده بهش گفتم ببریم سر سفره پرید گازم گرفت اگه نازاده بودم اش بلام نمی‌کرد <تصح> تو اینقدر شولی که وایسادیمون بزنه تو تو هیچ کاری ندونی برای خودت انجام بدی مگه میشه مش عايز میگه میگه زنده ایش گفته بهش باید تو دون توو مریم از خار دخترم مریم من بلای شما ده دیگه نزنیش باشه باشه قول میدم دوستش دارم کسی جز مریم نمیخوا مریم این دفعه رو به خاطر من ببخشش این چند روزه خیلی عصبی شده دو سه بار حالش بد شده تو نباشی وقت میمیره ها بهتر شما برای پسر زن نمیخواستی فقط کلفت میخواستی مریم این دفعه رو به خاطر من و مادرت ببخشش منی به خاطر بچت کنار بیا با این قضیه بسته دیگه پاشه بریم وگرنه با زور میبرم اتا با ده من دمه درم ببینید نصرت خانم این نهایت محبتش همینه یا زور یا کتک تهش به خاطر بچم باشه اما فقط یک بار دیگه اگر یک بار دیگه دستش رو دراز بشه دیگه توی این زندگی نمیمونه اومدم آقا سرید شمایین سلام خوبید چه عجب از این طرفا سلام مریم خانوم از مادرم شنیدم حالتون خوب نیست اومدم احوال فرسی بخشید میگفت باردارید بله ممنون هفت ماهی شده روزایی که دنبال دختر برای نادر بودم، من بهشون میگفتم این دختر چه گناهی کرده که زن این عصبی مریض بشه؟ اینم سرنوشت من بوده آقا سعید. خوبی از نداره جل در بریستین. همسایه ها چغلی منو به نادر میکنن. اونم میاد منو میگیره به مشت دلگرد. من میدونم این مرتیکه بیمسیدیت براتون محال چیزه بخاره که تقوییت بشین. یکم گوشت هم خریدم هم بخورید. شاید اون بچه دیگه زیر دست این بابایی که اتمن بچهاش هم میزنه زعرف نکنه. بگیر مامانتون آورده یکی کسی هم بهش گفت که منو دیده بگید باش کار داشتم خونه نبوده. این دفعه باش آقا تاین اما تو رو خدا دیگه این کارو نکنین. میترسم نادر بهم شک کنه. بازم شروع کنه به فوش و بد و بیراه. بازم منو به این و اون استغفر الله. تو رو خدا تو رو خدا دیگه این کارو نکنین. هرانم که زحمتش رو کشیدین تا اینجا آوردین من ازتون برمیدارم فقط بزنینش تو در زودی برین ازتون خواهش میکنم دست تو ماشین بیارم چطوری؟ کم کم پدر میشی یا پسرممه؟ بله ولی تو بیا عرضه ای تو هم بایدیکی رو پیدا کنی باید به زندایی بگم داری پیر میشی یا؟ نه فا از کسی خوشم نییمده نادر مواظب زننت باشون به غرس تو کسیو نداره. اینقدر نزنش به خدا گناه داره بنده خدا قم بینایش کمه تو هم میزنیش حواسم بهش هست حالا یکم کم تنبلی می کنه چیزیش نمیگم چون بارداره ولی اگه بعدش انقدر دیر چای بیاره حالشو رو تو رو خدا زحمت نکشید من هم خانم راستی سعید اما یهیه خونه کناریمون خریده تا یه ماه دیگه هم میان بشینه آه آقا یهیه و زنش نمیتونن خوشی و به کسی ببینن یه موقع نکنه به گوش بدی و زن تو بزنی عقل تو به کار بند و تصمیم بگیر حالا چقدر سنگ زنه منو به سینت میزنی مرتی که به تو چه ربطی داره من قصد جسارت نداشتم فقط از روی کن حالا میکشمت که دیگه حرف دهانتو بفهمی بیش شعور منو میدونی حالا درستت کنم وای مرد کشش کشش کشش کشتش ویلیش کن ویلیش کن ماده ماده باید شد اما زیبه لم کن از بزار رفت Wacht los, Mannesche. <Musik> واقعا از شما ممنونم اگه شما نبودیم که منو برسونیم این مارستان اصلا معلوم نبود چه بلهی سر منو بچه هم میومد خدا خواست من اونجا باشم واقعا خدا به چه آدمایی هایی بچه میده برای هم خانم یه سوال بپرسم جواب هم میده بپرسید آقا سعید دوستش دارید یه هم آقا سعید نادر رو میگم حقیقتش رو بگم نه هیچ علاقه بهش ندارم اگه میشه بهش گفت پدر تو این همه مدت که بچه به دنیا اومد حتی نکرد یه بار بیاد ببینتش خیلی دلم میخواست بیاد و به همه که مادر شدن و تبده اخر مبارک بعد یه ماه نمیخوایی برش اسم انتخاب کنی؟ حالا دیگه حال بچهات خوبه دکتر اجازه دادم برش خونه انتخاب کردم اما اگه نادر مخالفش بکنه دیگه نمی‌دونم چیکار کنم خیلی دارم میخواد اسمشو بذارم نگاه بشنگه بشنگه ولی چرا نگاه؟ همه یه سختی همو به خاطر نداشتنی نگاه کشیدم شاید اکه میدیدم هرگز منو به نادر نمیدادن شایدم نادر به خاطر ندیدنمه که داره زرگ رو میکشه و اخته اینجوری اینجوره نشون میده نمیدونم واقعا نمیدونم درسته این آدمای کوتاه فکر فقط جنس زن رو تحقیر میکنن کس هم نمیتونه بهشون بگه بابا جون زلم یه انسانه احساس داره حالا با همه اعضا یا بدون یکی از اعضای بدن ولی به حال انسانه اون هیچ اهمیتی به من نمیده خودتون شاهدین توی مدتی که اومدم خونه شما به خاطر شرایط هم نکرده تماس بگیره من به درک حتی از سال اصال با خبر بشه کی میخاین برگردین خونه به اون اگه روزی تصمیم گرفتی که ازش جدا بدون من میام باهات ازدواج کنم با هر چی که در وجودته من دلسوزی یا توهم ندارم بچه‌مو زندگیمو دوست دارم به همین قرآن منتظرت میمونم تا ثابت کنم دلسوزی و ترحم نیست اما اما اما اما شما شما حقیقت خیلی بیشتر از این چیزاست یه زنه مطلقه نابینای دهاتی نه نه نه هستم یه روز من تو رو با مادرت دیدم خواستم بیام خواستگاریت که شاگردم توی تعمیرگاه دستش با اسید سوخت یه ماهی دستم بند شد وقتی برگشتم گفتن که با نادر عقد کردید و پدرتون همون شب عقد بعد فهمیدن بیماری نادر فوت کرده تصمیم گرفتم دیگه ازدواجی نکنم حالا هم بهت قول میدم هر کاری از دستم بر بیاد برات میکنم بهت قول میدم از حالا تا روزی که نفس دارم تمام قلبم و بایش به دستای تو بسپارم بهت قول میدم از حالا چه تو شادی چه تو قم هم شهری که لحظهات باشم از امروز تا ته دنیا اوه. پاشو برو زن و بچه تو ببین پسرم زن ما حبتو نمیفهم اونم یه خیلی میشه مثل تو خجالت بکش پسر اون بچهته مریم گناه داره اونم یه دختر مثل خودش نفهمه اسمشو چی گذاشته هنار کرده دختر زایده اگه پسر بود یه چیزی اسمشو گذاشته نگاه البته گفته بازم اگه تو موافقت کنی اوه. یه میذاش نگاه آخه اینم من که میگم دختره اصلا نمیخوام اسمشو بدونم چه برسه به اینکه صداش کنم برید از خونم بیرون اون مادرم افخارشم ببر مهمونی تموم شوف من دیگه سعید نیستم هری. ری روم سیاه مادر ببخشید اصلا شما نیست تقصیر پدرشه که اینطور پرروش کرده تا واسه جلو شما و این حرفا رو بزنه مریم مادر قصه نخور خدا بزرگی برای منم ناراحت نشون هرچی باشید مادر بگید باید تحملش کرد. نگران نباشید مادر حرف به حرفش نمیرم خیالتون راحت ما دیگه میری میا بریم رسرت مواظب موازه به هر وقت رفت سر کار ما میایم میبینیم لالا <متغلی> کن دختر زیبای شبن لالا کن روی زانوی شغال بخواب تا رنگ بی مهر نیبینی تو بی داری یک تا خلخا سال بعد ماما جونم مامانی جونم بابا با دختر درونه ای رفت اتاقه اموه احیا خب خیلی تو کشی تا آمدن بیرون نفهمیدی دختر کی بود مامان نه ولی برشون خواهیم درونه رفت تو اتاقه دیگه بابا هم خندون رفت بیرون تو سرا حالا حق این زنه رو بذارم کف دستش زنی که بی هیا زنم رفت دنبال خانومه به گفت شده خانم خنده گفت از خوش ببرسی پاشو می تو زندگی من بابام خنده گفت قطعا چه اخت دیگه می داشت می شه. داره من رو از هم می پاشونه نه ولی خانمه میگفت مریم میمیره که بشنوه بهش گفتم مامان منو میگی دت تو گفت گفت گم ش خونتون بچه فوزو زنم اوی بی حیا حقشو میذارم کف دستش من آمدم دوره بابا رفت دارم چه ته سرا وردی دگاه گفته یه زن جوونی رو بنادار کردی تو اتاق راست میگه دروغ گفته بچه هست خره نمیفهمه بچه من خر نیست خودم از لبه دیوار دیدم فقط چهره شو ندیدم افشو تو شوهر داری بلد نیستی تقصیر من نذار با همین موهاد تا وسط گوچه میکشمت اونقدر میزنمد تا زیر دستم جون بدی زنی که کمک آی همسایه ها کمک کنید این میخواد منو بکشه کمک مادر نادر اومد یه دختر نوینا بندش کرد چقدر بهش گفتم بذار دو ماده من بشه گفت دخترت زشته دخترت زبونداره دخترت اله بله منم چند وقت پیش عقدشون کردم تا چشمتون در بیاد اونا هم میان خونه ما هم دیگه رو میبینن تا چند وقت دیگه هم بچه دار میشن خدا عزت نذاره که این کارو با من کردی امت امت برم خود سر دخترت بیارم. واقعا خدا تو رو برام رسونده بدون تو اصلا نمیدونم چطور با زندگی میکردم نه فرهنگ های اشتباه باعث سختی کشیدن آدم های زیادی میشه نصرت خانم بیچارم که جاریش دقش داد دلم برای اون تفلک میسوخت دخترموشم که دیدی بچه دار نشد خوب شد ما از اونجا کندیم و اومدیم اما دلم واسه همه زنای دیگه میسوزه که مثل من را اسیر بودن و هیچ آینده شاید در انتظارشون نبود نه دوره عوض شده مردم اون روستا هم حتی فهمیدن که نباید سرخود برای کسی تصمیم میگیرن ساعت چند میری کلینیک؟ امروز چند تا دارم اما خب میرم حالا این روان شناس برای خودش سعید آلمی داره هیچ وقت فکر نمی کردم. یه روزی بتونم بله آخر به آرزون برسم خیلی خوشحالم خیلی خوشحال میارزید میارزید به تمام اون سختی هایی که تحمل کردم واقعا سعید میارزی. وای ببخشید ما در این بحثون خیلی خستت کردن همش بهت آویزونن همش میخوان هر جا که میری با خات بیان نه مادر. منم دیگه پیر شدم با اینا سرگرم علیه آده که واسه خودش اومید و امیر انجلو. دیگه. اما این نگاه واسه خودش خانوم شده. و شن پا به پای من را میو خانومش به مادرش رفته آج خانوم. آقا سعید. من فقط از خدا خوشبختی مریم رو میخواستم. حالا که میبینم انقدر خوشبخت شده. دیگه هیچی از خدا نمیخواه. هرم از این که اینقدر خوشبخت شدم خدا رو شکر میکنم نگاه بابا سب الان میام تا دانشگاه میرسونمت رفتیم که رفتیم باید باور کنم یا نه توی خوابم یا بیداری محاله اما تو دستم داری دستاتو میذاری چقدر دور بود حراد داشتن تو اون روزای هایی شاید رایاست ملی حالا کنار من همین جایی من دکه ترمیم کنم روی ماه ها ترمیم کنم موسیقی